یعنی هشت سخه بله با حالا شما بب... پیوند رو ببینید پیوند رو میخونم شما ببینید که گفتار گفتار فردوسیه چون که خسره آگاه شد این سخن که کار نباورد مرد که هن دلشکر فرستادگان برگزید که گویند و دانند گفتو شنید یعنی این دو, دو, دو بهم پیغسته است گویند و دانند گفتو شنید یعنی بتونن ترجمه کنن سخن پارسی رو بگه برگردوند به زبان های کشور هایی که خواهند رفت. این کشور ها و چینه. حالا در آنزه میبینیم. فرستاد دنزی که خواهان چین به فقفور و سالار موکران زمین که گرداد گیرید و فرمان کنید کردار بد دل پشیمان کنید خورش ها فرستید نزد سفاخ ببینید ناچار ما را برا یعنی هم این که خورش بفرستید برای سفایی که از اینجا عبور میکنه و همین که خودتونم بیاید به پیشواز ما برا راست باید سفه را برزم هران کس که بگریزد از راه برزم فکر میگم من پیشنهاد دادم که اینجا رو برعکس بکنیم هران کس که بگریزد از راه رزم برا راست باید سفه را برزم گفت چند گفتند گرم سخونهای شیرین به آواز نرم که ما شاه را سر به سر تریم زمین جز به فرمان او اونس پریم و که راه دل ایران بوده است ببینیم تا چند ویران شده است کنیم از سر آباد و باخور یعنی دوباره من در هنوز میگم اثر سر یه دفعا من به شما گفتم از سر نه از سر میگم بچه بله بله, بله. بله. حالا از یعنی, از اول. یعنی دوباره بله. بله. کنیم از سر آباد خوردنی بیاییم و آریم آوردنی اینه که لازم باشه برای گذشتن سپاه ما میاریم دگر نامبر چون به رسید دل شاه مکران دگرگونه دید برای تخت او رفت و بداد داد بگفت از پیام آنچه چه بودش بیاد سبکسر فرستاده را خار کرد دل انجمن پرز تیمار کرد یعنی انجامنی از خود مکرانیان و اینم معلوم شد که از روی شاهنامه موکران کشوری که در سوی شرق جهان قرار داره نزدیک به چین باید ببینید وقتی که سپاه حرکت میکنه از چین یاری می‌خواد و از موکران اونجاست منطقی یک آه... کسی که تا به حال به این توجه نکردین که یک بیت شاهنامه است که حالا همه الان بخونم بعد تفسیرش بکنم سباکسر فرستاده رو خار کرد دل انجاما پرز تیمار کرد بدو گفت با شاه ایران بگوی که نادیده بر ما فزونی مجوی زمانه همه زیر تخت من است جهان روشن از فر بخت من است که خورشید تابان شود بر سپر نخستین بر این بوم تابد به مهر میدونید که در جهان و باستان خورشید نزد همه اقوام گرامی بود و این وقتی که وقتیکه خورشید برمیاد یعنی تلو میکنه اول به زمین من میتابه این زمین کجا میتونه باشه آه هدویتی که اول اونجا رو روشن بکنه؟ در بلندی، در کوه، در بلندی، در جهان. در جهان من اینو از شما برسم برای اینکه شنونده ما هم یه خورده بیاندیش خب، حالا شما دیگه بیشتر آزارتون نمیدم این جایی که خوشیر اول بهش میتابه شبه جزیره کور است. درست. یعنی از،, از چینم زودتر به اونجا آفتاب میتابه این, این سخن شاهنامه این میشه روشن ما کره همین کره عبارت از از مکران شاهنامه و بعد من یکی از یارانم دکتر علی شهیدی چند سال پیش از توی اینترنت در ورده بود که در سرزمین کره الان یک جایی هست که کوهستان بسیار زیبایی که وقتی سران کشورها میان به اونجا به دیدار اونا رو میبرن به اون سرزمین و اون کوهستان زیبا اسم اونجا موکرانه هنوز موکرانه اما یک سخن در تغرافیه های باستان اومده که دریای موکران را به کرمان را است درسته دریای موکران از کره میتونیم به دریای کرمان این موجب شده که نویسندگان و دیگران با خودشون فکر بودن که پس مکران یه جایی نزدیکی کرمانه ما وقتی که میرفتیم دبستان نخشه های دبستانمون اون باره کرمان یه بزرگ نمیشده مکران این مکران در نزدیکی کرمان کجاست کدوم شهر کجاست چه شه مرزی هیچ محلوم نمیشده فقط مکران هم داشت دیگه امروز مکران رو نمیدوستن ولی فقط همون یک سخن که دریای مکران را به دریای کرمان را هست موجب شدود که خیار کنند در بلوچستان و کرمان اونجا ما مکران داریم نه مکران کورست و در داستان ایران هم اینو خوب بهتر شهر دادن با همه چیزهایی که لازم هست ده. دوباره میخونم شو خورشید تابان شود بر سفر نخستین بر این بوم تابان بمر همم دانش و گنج آباد هست بزرگی و مردی و نیروی دست نمانم که بر بوم من بگذاری نمانم یعنی نمیگذارم. نمانم که بر بوم من بگذری از این مرز جایی به پی بسپری. بر این گونه چون شاه پاسخ شنید از آن جایگاه دشگر برکشید. کشید. برفتن فقفور و خاغان چین. بر شاه با فوزش و آفرین. پل و راه آباد کرده چون دست در و دشت چون جایگاه نشست. همه بوم و بر پوشش و خوردنی از آرایش بزم و گستردنی. بی آمد چون ازی رسید مقران رسید سلشکر جهان ای برگزید. برای شاه مکران فرستاد و گفت که با شهریاران خرد باد جفت. خورش ساز راه سپاه مرا. به خوبی بیا راه مرا. یا اه... گاه مرا. ولی که گفتار من نشنوی به خون فراوان کس اندر شوی فرستادا آمد پیامش بداد، نبود بردرش جای پیغام و داد. سر بیخرت زانسخون خیره شد، بجوشید و مقصش از آن تیره شد. پراکند لشکر همه گرد کرد، بیا راست بردرش جای نبرد. فرستاده را گفت برگرد و رو، به نزدیک آن بدگمان, بدگمان دشمن باز شو بگویش که از گردش تیر روز تو گشتی چنین شاد و گیتی فروز یعنی روزگار تیره افراسیاب فراز آمد و تو بر اثر اون شاد گیتی فروش شدی ببینی که آییز ما دست برد بدانی که مردان کدام همند و گرد برد فرستاده شاق چون بازگشت همه شهر مکران پرا بازگشت زمین کوه تا کوه لشگر گرفت همه تیر و مکران بر گرفت بعد ببینیم اینجا تیر کجاست من تا کنون تیر رو پیدا نکردم ولی خوشبختانه اولین باری که بعد از بعد از نواردهای که خسرو جایگاه ها موکران پیدا میشه. تلایه بی آمد به نزدیک شاه که موکران سیه شده کرد سپاه. سپاه هم در آمد درویه چو کوه. رده برکشیدند هر دو گروه رده این یعنی صف. هوا پرز پیکان شد و پر تیر. جهان شد به کردار درگاه قیر. به قلبن در شاه شاخ موکران بخشت. یعنی مجروح شد. از خستگی جان او هم نرست. و انجمن آن کشته شد ده هزار سواران و گردان خنجرگزار. از آن پس دلیران و پرخواهش جوی به تاراج مکران نهادند روی خروش زنان خواست. از دشت و شهر همه شهر مکران پر از رنج گشت. از آن شهر هر کس که بود پارسا به پوزش بیامد بر پادشاه که ما بیگناهیم و بیچاره همیشه برنج از ستم ایم یعنی پادشاهان گریدون که بینت یعنی اگه بینت یعنی توجه بکنه گریدون که بینت سر بیگناه بخشت سزاوار باشد زشاه خروشی برای آمده پر به سراکی پهلوانان فرخونده رای از این پس گرای از جای خروش ز بیداد و از قارت و جنگ و جوش چطنب کارگان را خوانم بر دونیم کسی کو ندارز دادار بیم این از خداوند نمی‌ترسه و در حقیقت ستم بکنه و از اهالی کرمان کسی رو بکشه اگر اجازه بدی دوست جانیدی پرمکا رو بخونم بسیار زیاد هست میمونه بسد خوناگر شما بخونم نمرم هم کم میشه این آخر سال باشیم و نمره خوبی بگیریم درود بر استاد جنیدی عزیز آیا بهتر نیست به جای زبان فارسی بگوییم زبان ایرانی با سپاس با بک شاد باشید زبان ایرانی هم بگیم همونه مطابق من در جایی که مربوط به با باستان میشه به طور که همین امشب گفتم زبان پهلوی فارسی گفتم اول بعد اصلاح کردم گفتم پهلوی این چیزی که بر زبان ما میگذاره چون از بعد از اسلام که مرتبا فارسی فارسی گفته شده و بعد هم اروپایی ها که باز اینجای کشفت پاس گفتن این دیگه عادت زبونه نه. اگر نه بله این زبان ایرانیه و این بهترین زبان جهانه ساده ترین بهترین دانشی زبان جهانه و دنباله همه زبان های نیکی نیا کنم منظور شده به جای فارسی بگیم زبان ایرانی زبان ایرانی که بگیم به هر کدوم از زبان های ایرانی اطلاق میشه. اگر بگیم زبان های ایرانی همه زبانها رو برابر میگیره بله. اما خب این زبانی که اکنون ما میخونیم و شانامان بهش نمیشه شده این زبان فارسی شناخته شده دیگه توی 1400 سال مرتبا همه گفتن زبان فارسی بله سلام استاد جاندی خسته نباشید به زبان پهلوی چی میشه؟ میشه مانده نباشید جوابش ماندک نه ماندک نه ببید ماندک نه نه به نه به وید بله یعنی مانده نباشید به درون همون چیزی که حالا فارسی شما میگیم مانده نباشید و جوابش اینه در مانده, مانده نباشید و پرامک دیگه ای که اومده اینجا هستش در مورد لحراس و جاماس پرسیدن که آیا اسمهایی مثل جاماس، لحراس اصف پسند همون از پیوان نجیب است بله همینطوری در جانباستان روی همطور که نقمه با بولبول و توتی و گل و نیلوفر زیباترین نام ها رو دختران میگذاشتن نام جانوران و رو پسرانم میگذاشتن به ویژه این پسند اصف زیاد بود که در روی نام ها مثلا فرق ارجت اصف که ارجاز شد ارجت یعنی نقره یعنی الان در زبان امم فرانسوی میگن آرژان در زبان انگلیسی میگن ارجنت دروسی که ما خودمون میگیم نقره و نقره هم یک واجه عربی نیست برای که معادل عربیش هست فبه نقره دیگرگون شده نوکریست سغدی یعنی واژه واژه ایرانیه و ما امروز دیگه ارجات به کار نهیم بلیم در عوضت عرجت معنی بوده و آرجان فروس به معنی نغره است عرجت هست بینی عصب سفید رنگ مثلا نفسون گشت بوده ویشت هست بینی اسب رمنده بله لهره بوده اعور و عصب یعنی عصب پیر اینها نامهای نام های بوده ایرانی با پتفنده عصب هم با همین نام ها عصب بله بله یک مطلبی گفتن من مطلب خودم شکل دارم بروید با درود همه آ... همه عالم تن است و ایران دل است ایران دل زندگوینده ز امپیر این شعر از نظامی گنجویه بله از استاد بپرسید که درباره نظامی و این سخن صحبت بفرمایید بله او نظامی هم مثل خوانی مفتخر به ایرانی بودن بوده و به ویژه وقتی که ازش خواستن که به زبانی غیر ایرانی شعر بگه او پاسخ داده است که ترکی استفتی سزای ما نیست. ترکانه سخن بهای ما نیست. آنکه نصب بلند دارد او را سخن بلند باید. یعنی به این ترتیب گفت نه فقط به زبان فارسی سخن میگم. و خوانی همچنین. و میدونیم که اون زمانی بودن اینا که کم کم قبایل در حقیقت تورانی نجات، یه نه تورانی نجات، زرد مغول نژاد کم کم آمده بودن به دشت‌های ایران و خب به طرف آزربایجان گرامی هم رفته بودن این همین کسانی که تحت عنوان آقایونلو و غرقایونلو اینها و قزان اینها رفته بودن خب اینا میخواستن که نظامی شعر به زبان ترکیه هم بگیه که اوف نه من باید به زبان بلندی شیر بگم که سزاوار نجاد من بله. شما شنونده برنامه پنجر خواهی روی مهداب هستید استاد فریدون جنیدی داستان های شاهنامه رو برامون میخونند ما الان در داستان جمع که خسرو هستیم و یان ذهنم رفت به این زیاد اومده گفتن که ما میخواییم به... کتاب های استاد جنیدی سلام خسته نباشید نباید خسته نشید بعد این مانده نباشید من میگم در مانده نباشید این کارا رو میکنید که نمره بره بالا استاد <تصفح> و دیدم یه قزم ببرم میگه من نمیگم وظیفمه میگم خیشخاریه من است خیشخاری اصلا آرمان به من گفتن چون تلفن زدی بله بله بله خدا چرا من میگم آرمان, <تصفح> آرمان خوهر منه که آرمان خواهر بزرگوار من که از اینکه بازی هسته شده صبح تا شب در بنیاد شهور به در گوش رایش کارهای بنیاد مشغول هست و همه بچه هم رو مثل مادر دوست خیلی خیلی بودرگ ما و عزیز ما هست از آرمان میگفت که آقای هداری گفت خیشکاری خوش هم اومد که ایشون یاد کرده بگه خیشکاری خیشکاری چیزیه که انسان خودش میخواد انجام بده وظیفه چیزیه که از بیرون به انسان محول شده ممکنه کسی که از بیرون بشی وظیفه داده باشن سرپیچی کنه و نکنه اما کسی که خودش با آهنگ درونی خودش میخواد برای ایران کار بکنه اون خیشکاری کرده شما هم خیشکاری به جای وظیفه کار هم همباره خوبه خدا آرما خانمو و همینطور شما رو نگه داره و پرسش این هستش کتاب های استاد جونیدی رو چگونه تهیه کنید من عزم می‌کنم شما میتونید با بنیاد نشاط و خوش تماس میتون بازم تلفن پیامک هستش که پرسید با تلفن 889 889 627 84 با این تلفن با این دورواژ تماس بگیرید خیلی پریشان گفتید. آره پریشان گفتم 88 و هشت ن بله. <تصفيق> تو بارال دکرار کنید آروم هشتاد هشت نود و شش، بیست و هفت هشتاد چهار و دورنگار یا همون فکس هشتاد و هشت نود و شش بیست دو چهل و سه با این شماره تماس به با این شماره را با با این دورنگار. و از کتاب های استاد رو اگر می‌خواید میتونن راه کنن که چکونه تحییر بفرمایید این چیزهایی که شما جا خوندید من توضیح بدم که من چند واژه رو برابرنهاد گذاشتم یکی برای جزر گذاشتم آبخاست, آبخاست. یکی برای مد گذاشتم آب... آبخاست آبخاست و آبخاست برای تلفن گفتن دورواج یعنی از دور سخن گفته میشه برای فاکس گفتن دورنگار یعنی از دور مینگاره البته اینجا شما عرض کنم من نخست این پروژه رو پیشنهاد کردم فرنگستان به جاش نماور پیشنهاد کرده بود بلکه دید دورنگار بهتره دورنگار رو گذاشتن و ما گفتن از کی گرفتیم و من برای ملت ایران این کار کردم که واژه درست با کار با. برای تلویزیون دورنمای و برای رادیو دور آواز این چند تا رو پیشنهاد کردم دور آواز رادیو دورنمای تلویزیون, تلویزیون. دورواش تلفن و دورنگار فکس ما موسیقی میشنیم تلفون شما آماده میشه و پیامک هایی که برای ما فرستادید از استاد فریدون جنیدی میپرسیم و ایشان پاسخ خواهند گفت. کارپردازدن دورآواز فرهنگ و با سپاس استاد جنیدی در سراسر تاریخ هیچ چیزی شکستانگیزتر یا توجیهش دشوارتر از پیدایش ناگهانی تمدن در یونان نیست میخواستم نگره استاد رو در این باره بدونم که چطور ممکنه در طی یکی دو قرن به یکباره علم و فلسفه و ریاضیات و هندسه در یک سرزمین ظهور کنه و آیا این مسئله با جنگ خشایار و جنگ اسکندر رابطه ای نداره چون خود افلاطون هم یکجا ما یونانیان را رتم بر این که هر اثری که به دفت مان آن را اصلاح و یا کامل می‌کنیم. درزم از استاد خاهش میکنم چندتا سرچشمه زبان پهلوی رو معرفی کنند تا همراه نامه پهلوانی ایشون مطالعه کنیم جاوی ایران زمین بهرام هستم از یران بجرو درود بر شما بهرام خب شما پرسشی کردید که پاسختون تو پرسش خودتون نوفته است به خوبی پی بردید که یونانیان برخوردار شدن از خرمن دانش ایرانیان و آگاهی ایرانی یک کتاب بسیار ارزنده در این زمینه هست به نام تأثیر فرهنگ و جهانبینی ایرانی بر افلاطون یعنی در حقیقت بر یونان که استاد استفان پانسی نوشته در یک کتاب دیگه هم که ما در بنیاد نیشوگور چاپ کردیم بررسی دانش در ایران از زمان حخامانشیان تا پایان صفویه اینا نشون میده که چه دانشهایی در ایران بوده بسیاری از این دانش ها مثلا فرض کنیم هندسی رو که به اقلیدوس نسبت میدن ما لوه پیدا کردیم لوه هایی پیدا کردیم که 1200 تا سال، 1800 سال پیشتر از اقلیدوس این در حق قضایه هندسی رو حل کرده یعنی برداشت اقلیدوس از ایرانه سهل است که یک ریاضیدانی ما داشتیم به نام ابو سیستانی که میگفتن سجزیبش او نوشته های نیاکان رو پیرامون مسلسات به زبان عربی که زمان زبان علمی زمان بود نوشته بود این کتاب رو که بردن مثل خیلی از چیزها از ایران بیرون و بعدا اروپایی ها خوندن و متوجه شدن که دانش جدیده این رو برگردوندند منطقه اون نام هایی که ما برای عجزه مثلث کردشتی بودیم اونا دیگرگون کردند، و سینوس و خسینوس و تانجان و خودانجان هزار سال بعد از این که ابو سعیل اینا رو نمیشته بود اما من چیزهایی پیدا کردم که نشون میده که ایرانیان حدود پنجزار سال پیش دانش مثلثات رو در به کار بردن در زمین پیمایی ها و این در کتاب دوم داستان ایران کاملا از روی چیده یعنی روش علمی نشون میدم که ایرانیان اون زمان مسلسط رو به خوبه میدونستن وقتی که ما در چارزار سال پیش یعنی درست تو هستوا پیشتر, پیشتر از تشکیل یونان یه جراحی مغز روی دختری داریم که بعد آنسولوگرافی کردن و این و زنده هم باقی مونده این دختر شما چطور میتونید که تصور کنید که اونو از ما برخورد نشدن در این زمینه کار بزرگی دیگه که انجام شده کار روانشاد امیر مهدی بدیه که در 15 جلد کتاب نوشت منطق جهان غرب درباروار این کار بزرگ خود کرد این کار به همت این شروط آخرین چاپ شد. چاپ دوبام هم رسیده و جوانان بیدار دل ایرانی از اون برخوردار میشن. اونها رو بخونید. همه رو میبینید که اینا جیرخار خانه دانش ایران بودن. منطقه و خوردن. و کتاب پهلوی هم شما میتونید هم کتاب عردا ویرافتان رو بخونید. که در آغازش میبینید که میگه که اسکندر گوجستک اومد و همه دفترها رو ما رو کشید و همه دانایان رو ما رو, و همه رو کشت و تمام هم ها هول همه جا رو آتش کشید و همه رو بست و ما تا زمان بلاش عشکنی دیگه چیزی ندوشت مثلا نوشته اینا هم... چون همه رو کشته بود تا همه کتابا هم سوزونده بود اتفاقا در زمان بلاش روان شد که اسم همه ایران رو بگردید بلکه پیدا بشه در سر, تا سر ایران روشته‌ها و مینبروار همه جا رو می‌کردن بالاخره 21 نسک پیدا میشه نسک به زبان عوستایی یعنی, یعنی کتاب که بعد معرب این رو کردن نسخه بسیاری نسک پیدا میشه و با این حال مسائل خیلی بزرگی از این نسخهای معدودی که تازه بعد از اون بسیاری نسخ هم که بعد از اسلام یه مقداری گم شد و از بین رفت پنج تا بیشتر الان باقی نمون. تو از همون پنج تا ما مسائل علمی بسیار بسیار بزرگتر بودیم. عباس قیاس ما غیر از قیاس بررسی کنندگان اوستا بر اروپاست. من همه از دیدگاه دانش هم نگاه کردم و میبینیم که در حقیقت خیلی خیلی مسائل علمی دانشی بر نیاکان ما روشن بوده. شما هم شاد باشید. سپاس از شما اصطورت دونه دید یه دونه رو پخش خواهیم تلفن، پخش میشه باقی تلفن رو آخر برنامه آخر برنامه پخش خواهیم کرد ادامه فرمایید داستانه کی خوش جهاندار سالی به مقران بمان، زهر جای کشتیگران را بخواد به خشکی بکردان چه بایست که شما دیدید حدود بلد. 20 سطر یعنی نه 10 سطر افضو بود اما اون بیت به این بیت بیت واسه تو دوباره میخونم جهاندار دار سالی به مکران بماند ز هر جای کشتیگران را بخوان به خشکی بکردون چه وایست کرد چه کشتی با آبند در کند مرد به شش ماه کشتی به رفتی براب که اون هر کسی جای خواب یعنی آروم بود دریا آروم بود به هفتم چون نیمی گذشت ز سال شدی کژ و بیراه باد شمال باد شمال نه که از شمال بیاد بادی که نم در حقیقت آرام بخش باشه هنوز در خراسان هم میگن در تاجیکستان افغانستان هم میگن در اینجا در خراسان این سو مرد بیشتر ما میگیم شمال به بچه شماله اما در افغانستان تاجیکستان شمال میگن یعنی نسیم یعنی نسیمی که فرح بخش باشه که این میگه این باد شمال کجا رو بیراه شد این نسیم بخش تبدیل شد به یک طوفان سهمین برآورد کشتی و رو برق. از آب شتاب آمدش بود جای شتاب یعنی به... که خود بیدرنگ دستود کشتی ها رو از آب در بیارن بیابانش پیش آمد و ریگ و دشت تناسان به ریگ روان برگذشت همه شهرها دید ورسانه چین چین زبانها به کردار زمین ببینید این آگاهی درستی که با اینکه که سپایی به خاطر طوفان پیاده شده اما این آگاهی درستشون باز به ایران آمد. میبینید که زبانهاشون همسانه موکران و چین بوده. شهرها مثل چین بوده. برای که این کشور عظیم چین خب این تا از موکران بیان حتی از هندوکوش رد بشن به قسمت های جنوبی چین همه چینه. هزاران فرسنگ وقت حرکت کردن چینه. البته ما در حقیقت نشانه های داریم از اینکه که فرهنگ ایران اونسو بیرد بر حقیقت پیدا کرده یا برای سر همین طوفانی که اومد که اونا مجبویشون اونجا بمونن و این فرهنگ بود یا اینکه به علال دیگه ایرانیان با اون کشورها رفتن ولی شما از جا تا به هندوستان بدسته همه شهرها همه برسان چینه و این آگاهی درست تو شانه ما هست همه شهرها دید برسان چین ها به کردار مخران زمین بدون شهرها در بیاسود شاه خورش خواست چندی ز بحر سپا زلشگر یکی نانورد برگزید که گفتار هر کس بدانت شنید فرستاد نزدیک شاهان پیام که هرکس کس او اوجوید آرام و کام بیایند خورم به این بارگاه برفتند یک سر به فرمان شاه یکی سر نپیچید زان مهتران به درگاه رفتند چون کهتران چون دیدار بود شاه دیدار یعنی ام جیگر دیدن دیگه بله. شو دیدار بود شاهپن واغچان بخوشید گردن برفراخت چون من میخواستم شما با دست اشاره من مگه اگر... چون تلفن ها ندارم اگه هست اگر میشه داستان رو چون احساس کردم به جایی رسید که میتونید ادامش رو البته بله. هفته آینده نه اون نه, هفته هفته نه, نه در اونجا ممکنه وقت گیر بیاریم ده. بله بله ان ادامه داستان ادامه‌ی داستان رو باغی پیامک ها اومده و تلفن هایی که زمان زیادی هم نداریم از تاییک کننده برنامه چیزی من چند چیز که داند. یک داند. هفته به بپا... ب... یکی این که هفته پیش از نیشابور تلفن کردم چند تا سبز هست من اشتباه هم باقالی رو چون با, با سرعت گفتم باقالی رو اعتراضم این سبزی هایی برای گندم جو عدس مش خود خود لوبیا احلنه. من اشتباهی ثبت می کنم هم... بله گفتم دومی که یک شنونده عزیزی از لورستان گویر پرونی کلاته ما آیا با کلات ارتباط داره من درباره باره کریتاک اینا به زیاد کردم از یاد بردم که بگم نه این کلاته همون معنی کریتاکه اون کلات باید در جهت شرق خوراستان باشه احتمالا همین کلاتی که امروز هم هست یک من در بنیاد نشو بودم یه دختری که از آوازش معلوم بود که 15-16 سال بیشتر نداره. تلفن زد گفت که من از شنانگان برنامه شما میخواستم که شاهنامه بگیرم. چون من گرفتار بودم. از این دختر نپرستم نام چیه آفرین درود بر اینکه تو میخوای در این سن که صداد نشون میده که بیشتر از 15 سال نداری میخوای شاهنامه بخونی؟ این فراموش کردم اینو بگم حالا از اینجا پیام براش میفرستم که امیدوارم شاد باشه پر خبر دیگه این که من همین امشب در کهش بودم و در یک انجمنی که به نام فردوسی هست برگزار شده بود به جزت من آقای دکتر شامنصور از تاجکستان سخنانه کرد در باره اهمیت شانومه در کشورهای ایرانی و بعد من هم که دیگه درباره صحبت کردم خواستم این خبرم به همه چنمه میگوان در ایران بدم حالا در خدمت شما هست سپاس از شما شما برنامه پنجره های روی محتاب رو می شنبید. استاد فریدون جنری از آسان های شاهنامه برای ما می میخوانند و سوالات شما تلفن های شما که آماده هست و پیامک های که من خواهم خواهد می این تلفن رو والله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب و احترام و تشکر از برنامه خوبتان خاصاً از آقای استاد مدی عزیز سوال کنم که وقتی داستان‌های شاهنامه را میخوانیم بعضی ابیات به صورت گوریزی و پندآموز به چشم میخورد مثلا در رستم و سهراب در حین داستان میخوانیم همه تلخیز از بیشی بود مبادا که با آز خیشی بود آیا این ابیات هم افسوزه هستند یا حکیم فردوسی سروده با تشکر سید حسین صالحی قصر از چهار وقت شاد باشید تو درود و وقتیاری و قهبر این بیت از شانمه است منطقه ممکنه که یه وقت هم داشته باشید در جاهای دیگه ولی این از اصفر دوستی بله تلفن رو بردیم با دروت خدمت استاد جانهدی یک سال برای من پیش اومده استاد چند بار در مورد افضادهایی که صحبت میکنم یان یعنی فلان مطلب به این دلیل که به عقل جور در نمیاد و درست نیست افزود است من این سؤال دارم آیا این فردوسی نمیشده اشتباه کنه مثل عبیاتی که در حافظ و سعدی هست و لغزش داره و آیا این استلال درست میتونه باشه با تشکر دقیقان هستم از اسمان درود بر شما و سپاهان این نام سپمان بردید به یادوردم که استاد بزرگ اسفهان استاد محمد مهریار بعد از ۷ سال زندگی پرووار زندگی رو بترود گفت و دیروز وقتی که پیکر رو به خاک میپزند بدونی که برنامه پیشین باشه همگان سروده ایران رو خوندن و بعد یکی از ش شناسان خوب ایران آقای احمدی از بخش از شنمما رو برای اون روان 16 عم پربارید داشت و برای ایران کار کرد. و به شادمانی به جهان مینور رفت و اما یکی از بیسته هفت سنجهی که من به کار گرفتم سنجش خرده و فردوسی نمیشه با هیچ شاعری حتی سعدی مقایسه کرد سعدی که که که ممکنه که از یک موضوعی به آسونی از کنارش بگذری. با این سردی هم خداوند سخن شناخته شده اما فردوسی نه این من بارها گفتم که انوری وقتی که در باری میگه آفرین بر روان فردوسی فیدوسی آنها مایون نجاد فرخونده نه، او نه استاد بود و ماشا او خداوند بود و مابنده چنین کس نمیتونه یک سخنی دور از خرد گفته باشه نمیتونه دور از موازین و قوانین زبان و فارسی گفته باشه او خداوند سخن هست و او جان و روان و آینه تمام نمای فرهنگ ایرانه مطمئن باشید از فردوسی خطا هزار فرسنگ بدوره از در من بپوشم که اییناژ یا ایرانوی که از اون به نام زاد 18زار توش یاد شده همون تاجیکستان یا خیر و اینکه کشه شدن 18زاررتش رو در آتش کردی برق که در شاهنامه اومده میتون درست بدون میانن نه، ما این هستم هده سال از کودش لوستان. جنگ در روان عوستوی یعنی مرکز مجاد آریا مرکز پروارش مجاد آریا بر. اون چیزی که من پیدا کردم بله در تاجیکستان کنونی و اون حوالی مثلا و همون نزدیکی یکی باید باشه به زودی در کتاب داستانی جان رو خواهید خوند و اما که زرتوش اونجا به دنیا آمده این درست نیست برای که در یاسنو نوزده بندهای 15 16 17 18 19 پنج بند که اومده اونجا روشن میکنه که از در ری دیده به جهان گشوده خود ری یا امروز چه پرواهی نداره ولی ياسنو چنین داوری میکنه بله توی میخوای شما صرفه بفرمید به موثقی به سال های شما اومده و سوالاتی که کردید درباره نوروز و ایدو نوروز میخوان بدونن استاد جنیدی که در دو برنامه آینده که مربوط به سال نو هست درباره چی میخواین صحبت بفرمایید مشتاقم بدونن که خودشون رو آمده. حتما درباره نوروز من دوست گسترده ای صحبته صحبت کنم نوروز در نظر ایرانیان و از در من... در ده شان نوروز و اوین ها هم که در بهش اشاره میکنن و گفتن که پرامه که دیگه اومده سلام نوروزی استادم میخوایم بشنبید <تصفيق> سما شما سال بره. سلامی داشتید اجازه بدین که در برنامه نوروزی یعنی یک شنبه یه هفته آهنده من اونو براتون بخونم برای همه ملت بزرگ ایران در شما درده نکنه توی تاریخ کرمان نوشته, نوشته وزیری نوشته 5000 هزار خانوار اسکندر،, اسکندر از کرمان کوچه اجباری میدهد به آلمان آیا حقیقت داره؟ البته که کرمانیا، ما ایرونی‌ها آلمونیا رو دوست داشتیم و همه خودمون متعهد بود که در جریانات جنگ دوم جهانی ما همه طرفدار آلمان بودیم نه تنها ما افغانستان همطور بوده و تاجیکستان هم تور بود و خب ما میخوایم که بگیم که مثلا کرمان و گرمان از یک چیز است اما باید بدونیم که این واژه کرمان در واقع یعنی میان کوهستانی من بیستواندی سال پیش یک مقاله خیلی مفصل نمیشن پژوهشی درباره نام کرمان که در بنیاد شوبر هست اونو بخونید این در حقیقت گعیری ما نبوده این به جرمنی ارتباط نداره نام ها در طول این کشور آریایی در پهنه در کشور آریایی ممکنه که یه وقت تکرار بشه مثلا شهری که در آلمان الان هست اشتوتکارت میگن این اشتاتکارت در حقیقت 80 کارت ورسی و 80 نام یکی از روزهای ایرانی بوده. 80 نام نیروی بوده که با با همکاری همکاری می‌کرده، گناهان رو از مثلا بدیهود، حمزه جدا میکرده که معلوم میشه چه بیشتر در حقت پاکتر رو اینا. این خب یکی نیروی ایرانیش در ایران ممکنه اسم بذارن اما خب ایرانیانی که رفتن به اروپا اون این نامها رو با خودشون بردن و اما نه کرمان که بگیم در زمان اسکندر کرمان در آلمان وجود نداشته آلمان تقریبا ۶ ۸صد سال پیش کمتر بلکه قبایل به هم دیگه پیوسته شدن کشور رو تشکیل دادن کههن کشور اروپایی یونان 2800 سال پیش بعد از اون رومه که 2000 سال پیش پس از اون فرانساست که 1000 سال پیش شالمان فرانسار تشکیل ببین اون زمان کرمانی وجود داشتی که ما بگیم از کرمان بردن اونجا بله و درباره معنی کلمه سینوه پرسیدن زمان زیادی هم نداری استاد جمیلی در ارسطو نماد پزشکی بوده و از اونجا که مثل زیر نفوذ فرهنگ ایران بوده سینه‌رو اونها تعبیر کردن به سینوه و بعد یک خیال باف و عظیمی مثل طبیولا و از اون 500 صفحه کتاب 600 صفحه کتاب درورد و سرهم هم کرد و بافت و به نام سینوه نه سرسعین نماد پیزیشکی در ایران بود در مورد دروره در یه صحبت کن در آین ما هنوز در آخرین روز سال برای روان در گذشتگان خیرات شیر برنج داده می شود امیر امیر پالش گت ساران در درست این همونه دنباله همون تنبر انبرگاهانی که خب حالا منم هم میگم همین الان همه مسلمان های ایران شب جمعه آخر سال میرن بله. به زیارت قبور اهل قبور میگن بله. چرا اون حتما باید این وقت برن بلکه این جزء که هم انبر همون فرهرون رووام ها هست هنوز به این ترتیب اونو رو گرامی می خیلی لطف کردید سپاسکنزارم پیروز باشید از شما استاد جید همطور از شما شگان عزیز که برنامه ما میشننوید انشاالله موفق و پیروز باشید. شب بر خمگی شما خوش